درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجیان تلویزیون رنگین کمان بخش بیشتونه نهم گفتارم درباره کسروی را شروع کنم و احتمالا این بخش بخش آخری از این گفتار خواهد بود هرچند که درباره کسروی مطالب فراوان است. و خوب در این بخش سعی خواهد کرد که سعی خواهد شد که قتل کستوی رو آنجوری که اتفاق افتاده بیان بشه در بخش قبلی به اینجا رسیدیم که شروع کرد از اوصافو آداب و آدات شیعان انتقاد کردن زخنیچند در باره زشتی انتقال استخانهای مردگان شیعان به جوار قبور مقدسین خویش می نویسد و این عمل آنان را علاوه بر نادانی و بیخردی موجب پخش میکروب و انتقال بیماری در جامعه می‌داند. در جای دیگری گفتم اینا رو تکرار می تا برسم به اصل مطلب در جای دیگری در مورد درنگی مردم دورنگی و مردم فریدی ملایان سخن میگوید گوید می نویسد که در سالهای پس از شهریور بیست که به خاطر جنگ و اشخال کشور به وسیله قواه بیگانه کمیابی ارزاق و در نتیجه گرانی آنها در کشور به وجود آمده بود ملایان این پیشامد را به حساب بیدیه مردم گذاشته و از منابر میگفتند که چون مردم نماز و روزه را ترک کردهاند زنها بیهجاب شدهاند مجالس روزخانی تعطیل شده است زیارت قدغند شده است لذا خدا به قذب آمده برای تنبیه مردم این بلاها را فرستاده است آنگاه با خشم. و تندی قرامه مخصوص به خودش می ای بی خدا از روباز کردن زنان تهران کینه میگوید آن هم از بچگان و زنان بوشهر رو بندراباس اینان یعنی زنان تهران روباز باز میکنند و خدا به آنان یعنی افراد و مردم بوشه رو بندراباس خش میگیرد پس چرا زنهای اروپا و آمریکا که همیشه روبازند خدا به آنان خشم نگرفته تنها از روباز کردن زنان ایران خشم میگیرد خاک بر سرتن ی نادانند پس از انتشار کتاب فوق کسسبی از پایین نشست و کتاب دیگری به نام بهاییگری را تعلیف کرد در این کتاب نیز وی الزامن میبایست از امام زمان شیعیان زخنگوید زیرا که علی محمد باب ابتدا به نام باب امام و سپس خود امام زمان ادعا کرد که از در این فرصت نیز حملات کوبندهی بر علیه امامان و به بیش آخرین آنان مهدی و و بار دیگر بیشتر از پیش باورهای شیعیان را به بعد انتقاد تنزالود خیش گرفت. به دنبال انتشار این دو کتاب اکثریت مردم شیعه مذهب جامعه ایران یک دست و یک زبان بر علیه وی جبهه گرفتند. با این همه او از گفتار و نوشتار باز نایستاد. و بیان عقیده را به عنوان یکی از حقوق مسلم شهروندی برای خیش مجاز دانست او را به دادگاه کشیدند زمانی که حکم احزارش به بازپرسی را گرفت دریافت که اینک آغازی است بر پایان راه و چنین نوشت خدا را سپاس که پس از پنجاه و هشت سال زندگانی یکبار بار را هم به شعبه بازپرسی افتاده و آن هم گناه هم کتاب نوشتن و با خرافات جنگیدن است این پرونده مرا به راهی میاندازد که اگر تا پایان پیش رود مرا هم پایه سقرات و مسیح خواهد گردانید سقرات و مسیح هم به همین گناه محکوم کردیدم و بالاخره همان گونه که خود پیش بینی کرده بود آدم کشان اسلامی منتظر رعی دادگاه نشدند حکم ارتداد و از طریق ملایان نجف به قدار بندان متاسب اسلامی ابلاغ شد در تاریخ 8 اردیبهشت 1324 در چهارراهش مدونیه تهران با تعداد دیگر از همفکرانش نواب صفوی به کسوی حمله کرد در این حمله کسوی به شدت مجروح شد نواب و همفکرانش زندانی شدند لیکن با اجماع علما و حمایت بازار و برخی از رجال کشور و نیز گروهی از نشریات و سران شهربانی و نظامی آنان را از زندان بیرون کشیدند در بیمارستان نیز ها خلاف واقع مطالب را مینوشتند و تنها کسی که از روزنامه نگاران به دیدارش آمد و درباره او مطالب واقعی نوشت محمود تفضلی مدیر روزنامه دیران ما بود ده ماه بعد در یک روز دوشنبه ساعت نه صبح کسری برای جوابگویی به کتاب شیعیگری به دادگاه دعوت شده بود آن روز با توطعی از قبل معین شده گروهی از اعضای فدایان اسلام با همکاری برخی از ماموران دولتی و یک درجه دار نظامی به شعبه هفت بازپرسی دادگستری تهران حمده و کسری را در کنار منشیاش با گلوله و کارد و خنجر و قد داره به قصد آنان پس از الله اکبر گویان سوار درشدهی شده بودند که به وسیله ماموران انتظامی دستگیر می شوند ما مطالعه سطور فوق روشنمان میشود که دستهای آلوده و ناپاک ارتجا خونه چه شخصیت والایی را به خاطر تأسب و جهل و خصومت و حماقت به ناحق ریخت و کشور ایران را از وجود چونین انسان فرهیخته و والایی محروم ساخت شاید اگر کسوی به دور از محیط سیاه و خفقان و خرافات آخوندی در یک جامعه آزاد متولد شده بود اینک دنیا از وی در حد ولتر و رسو ولتر و دیترو هم میگفت کسوی را به بحانه ارتداد کشتند مرتد در فرهنگ اینان به مفهوم بازگشت از دین است یعنی که اینان با آزادی اندیشه و قلم و بیان و رفتار و کردار مخالفند. در فرهنگ اینان مغز توده مسلمان باید در زیر انبوهی از خاکستر نادانی و نافهمی توهی از هر گونه آگاهی باقی بماند. و این تنها است که حرمت و اعتبارشان را از گزند چون و چرا در امان می‌دارد. توده مسلمان شیعه لازم است که در حماقت و نافهمی باقی بمانند تا ارکان اجتهاد و تقلید اینان دار نگردد مگر یک انسان آگاه چشم بسته تن به اوامر و مناهی شخص دیگری میدهد منطق عجیبی است اینان میگویند ما باید در... شما باید در بست سمن و آداب ما را بپذیرید و گرنه خونتان را هوا و هدر خواهیم کرد چشم مبلغان حقوق آزادی بشر روشن پایان بخشها روز عزیزان بخیر